بسم الله الرحمن الرحیم خداوندی بی مهربان نهایت بارش سوگن به با بادهای پراگنده سازنده که هر چیز را به گونه پراگنده می سازند باز به با بردارندگان بار سنگین باز به با روان شویندگان به با آسانی باز به با تقسیم کنندگان به امر خداوند بی شک چیزی که با شما می شود راست است بیگمان جزای اعمال صورت گرفته نیست قسم به آسمان و مسیرهای هماهنگ و منظم آن که شما واقعا در گفتاری مختلفی هستید و باز داشته می شود از او حق کسی که از هدایت باز داشته شده است کشته شوند این دروگویان آنانی که غرق بیخودی خودی میپرسند می پرسند روز جزا چی وقت است؟ روزی که به آتش دوزخ سوختانده می شوند. جزای شرارت خود را بچشید. این بود چیزی که به آن عجله می بیگمان بگمان پرهیزگاران در ها و کشمسار قرار دارند. و چیزی را که پروردگارشان به ایشان از کرده و کمال رغبت می گیرند واقعا ایشان پیش از این روز نیکوکار بودند ایشان لحظات کمی از شب می و باز در سهرگاهان آمرزش خواهی می کردند. و در اموالشان حق شده ای بود برای سوالگر و نیز برای بهره یعنی محتاجی که از سؤال خودداری می کند در زمین نشانه است برای باورمندان و نیز در خود شما پس نمی بینید و روزی شما در آسمان تعبیه شده است و نیز آنچه با شما وعده داده شود؟ آری و قسم با فروردگار آسمان و زمین که بیگمان این حق است درست مانند این که شما سخن می گوید. آیا به تو داستان مهمانان گرامی ابراهیم رسیده است؟ شون بر او وارد شدند و گفتند سلام ابراهیم گفت سلام او با خود گفت مردم ناشنای سپس به سوی خانواده خود رفت و گوثاله فربه بیریانی را آورد آنگاه این طعام را به ایشان نزدیک کرد و گفت چرا نمی خورید از ایشان احساس ترس کرد گفتند ما ترس و او را به فرزند فرزانه مشده دادند. در این وقت زنش در حالی که با تعجب فریاد می زد به پیشانی خود زد و گفت پیرزن نازای صاحب اولاد می شود گفتند پروردگار تو چنین فرموده است و او صاحب حکمت و دانوست ابراهیم گفت پس معمولیت شما چیست ای فرستادگان گفتند حقا که ما به سوی مردم گناهکار فرستاده شده ایم. تا سنگپاره های از گل را بر ایشان فرو ریزیم سنگپاره هایی که در نزد پروردگار تو برای اصرافکاران نشانی شده است پس کسانی از مؤمنان را که در آنجا بودند بیرون آوردیم ولی جز یک خانواده از مسلمانان را در آنجا نیافتیم و در آن دیار برای آنانی که از عذاب درناک می ترسند، این را به حیث نشانه گذاشتیم و در داستان موسا نیز نشانه است انگامی که او را نزد فرعون با موجزه روشن فرستادیم اما او برکان دولت خود آورد و گفت این شخص یا جادوگر است یا دیوانه پس ما او و لشکریانش را گرفتار ساختیم و ایشان را به دریا گندیم و او ملامت بود و نیز در داستان عاد نشانه است وقتی که بر ایشان باد عقیم را فرستادیم بادی که نه تنها ابر و باران را به همراه نداشت بلکه از هیچ جای نگذشت مگر آنکه آن را همچون کاه پوسیده تباس ساخت و در داستان سمود نشانه دیگری بود زمانی که به ایشان گفته شد از این زندگانی خود تا مدت بهرور شوید اما از حکم پروردگار خیش سر باز زدند پس آواز محیب ایشان را فرا گرفت در حالی که می نگریستند ایشان طاقت ایستادن را نداشتند و نه هم از انتقام گیرندگان بودند و قوم نوح را پیش از آنها حلاک کردیم بگمان ایشان قوم فاسقی بودند و آسمان را با قوت بنا کردیم و بگمان آن را وسعت دهندهیم و زمین را گستردیم و ما گسترانیم خوبی هستیم و از هر چیز جفت یعنی دوتا آفریدیم تا باشد که پن بگیرید پس به سوی خدا شتابی، بگمان من برای شما از جانب او بیندهنده آشکاری هستم با خدا معبودی دیگری قرار ندهید بگمان من برای شما از جانب او بیندهنده آشکاری هستم به این ترتیب پیش از ایشان نیز هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه مردم در حق او گفتند جادوگر است یا دیوانه آیا همه کافران در مخالفت با پانبران خویش یکدیگر را به آن کرده نه نخیر بلکه ایشان مردم سرکشند لذا از ایشان رو بگردان تو ملامت نیستی و پند دیزی زیرا پند دادن به مؤمنان سودمند است جن و انس را نیافریده ام مگر برای اینکه مرا پرستش کنند من از ایشان روزی نمی خواهم و نه از آنها می خواهم تا مرا طعام بدهند هم حقا که خداوند خودش روزی دهنده و صاحب نیروی اسوار است بگمان برای ستمگاران بهره است مانند بهره یارانشان پس شتاب نکنند فسوای سوای بر کافران، از روزی که به آنها عدد داده میشید.